چه کشور خوبی قرار بود دو کشور همسایه تفاهم نامه بازرگانی امتح. به همین منظور هیئتی تجاری از یکی از کشورهای همسایه به کشور دیگر رفتند. رئیس هیئت تجاری مهمان هر روز به کشور خودش گزارش کار میفرستند. ترجمه این گزارش های روزانه را پایین ماحظه میکن. 3 مارس ۹. فرود فرودگاه از هواپیما که پیاده شدیم کسی به استقبالمان نیامد. جز مأمورهای گمرک. مأمورها ساک و چمدان‌هایمان را روی میزها خالی کردند و همه چیز را زیر رو کردند و کل وسایلمان را گشتند. با آنکه اعتراض کردیم و گفتیم این کار خلاف مقررات است، ما هیئت تجاری هستیم و حق ندارند وسایل وسایلمان را بگردند، نتوانستیم حالیشان بکنیم. اسنادمان را نشانشان دادیم اما فایده ای نداشت. از گمرک ترخیص شدیم حدود دو ساعت منتظر موند. چون کسی به استقبال ما بود حیران و سرگردان مانده بودیم و نمیدانستیم چه کار باید بکنیم. درست همان موقع که تصمیم گرفته بودیم دنبال هتل بگردیم تا شب آواره و سرگردان نمانیم، جمعیتی حدود پانصد نفر به استقبال استقبالمان آمدند. آقایی که به نظر مسئول استقبال کننده ها میآمد گفت: ما فکر می کردیم شما از راه دریا میایید. برای همین از صبح حالا تو اسکله منتظرتون بودیم. گفتم: آدم خیلی شوخی هستید. ممکن نیست که این آقا نداند از کشور ما به اینجا راه دریایی وجود ندارد. از دست معمورهای گمرک گله و شکایت کردیم. به شکلی بسیار معدبانه عذرخواهی کرد. فکر کردن از خودمونین. آخه میدونین خبر رسیده یه گروه قاچاقچی داره میاد. بعد خنده کنان اضافه کرد. <تصفح> شما رو جای خارجی ها نگرفتن. از خودمون حساب میشین. تشکر میکنم. آقایی که به نظر رئیس استقبال کننده ها می آمد گفت: واسه استقبال از شما فقط تونستیم 500 تا نفر جور کنیم. فرصت نداد بپرسم برای چه اینقدر زیاد. ادامه داد: چون میدونی این آخر روزنامه‌نگارا رفتن استقبال یک گروه آرتیست که از آمریکا میان. آقای معاون رفتن سفر تبلیغی، آقای مشاور رفتن مراسم افتتاحیه، آقای مدیر کل رفتن صد، استاندار رفته بازار برای بازرسی. مدیر تشریفات رفته ایسکای راه آهن بدرقه نخص وزیر. مدیر امور حقوقی امروز صبح بازنشسته شد. مدیر اداره ویژه به ضرورت به مرخصی اجباری رفت و معاون مدیر کل به علت بیماری داد خلاصه هیچگی نمونده جز من. برای همین استقبال کننده ها اینقدر کمند. وگرنه ده پونزه نفره برای استقبال می اومدیم. پرسیدم، جناباری کی هستین؟ من جانشین معاون منشی کمکی مدیر شعبه اول معاونت هستم. اگه مجبورم نکنن به علت مریضی استعفا بدم یا بنا به ضرورت به مرخصی اجباری برم یا اگه بنا به صلاح دید از کار بیرونم نکنن در حال حاضر کارم اینه. وقتی داشتیم سوار ها می می‌شدیم گفت: مراسم استقبال رو توی دریا ترتیب داده بودیم. الان همگی با هم میریم ساحل. بعد از اینکه مراسم اونجا انجام دادن، شماها تشریف میبرین استراحت. میبرین. در ساحل درگاه از اتومبیل ها پیاده شدیم. با قایق به کشتی رفتیم که دور از ساحل لنگر انداخته بود. چون کشتی نمیتوانست به ساحل نزدیک شود، ما به کشتی نزدیک شدیم. چند کشتی که با پرچم تز اینشان کرده بودند، از ما استقبال کردند. در ساحل، چهل و یک تیر توب شلیک شد. دوباره سوار غایق شدیم و به ساحل برگشتیم. روی اسکله چند دختر بچه به ما دستگل دادند بعد دوباره سوار اتومبیل‌ها شدیم و راه افتادیم. در راه از زیر چند تاق نصرت که با شاخه شمشاد این کرده بودند رد شدیم و چند گوسفند زیر تاق نصرت‌ها سر بریدند. بعد وقتی از جلوی گروه موزیک رد می‌شدیم چندتا تا انداختند و در میان تشویق‌ها به هتل محل اقامتمان رفتیم. چهار مارس 1900 خبرنگارها در هتل به ما حمله کردند. عکسمان را پرسیدند، نظرتان در کشورمان چیست؟ ما هم همان جوابی را دادیم که همیشه در هر کشور عقب ماندهی که به آن سفر می‌کنیم می‌دهیم. می, می دهیم. است، خارق‌العاده است، مثل بهشت پیشرفتهایتان شگفت زدهمان کرد، خیلی درس هست که می از شما بگیریم یکی از خبرنگارها از من پرسید، بیشتر از همه از چی خوشتون اومده؟ من چون از قبل پرسجو کرده بودم و می چطور باید جواب بدهم تا خوششان بیاید؟ گفتم، آشق شیش کباب و دلمه و باغلوایتان شدیم. درست همه موقع که خبرنگارها کارشان تمام شده بود و میخواستند از هتل بروند، یکیشان پرسید شما کجا بازی میکنید؟ گفتم، من بازی دوست ندارم. با تعجب به صورتم نگاه کرد. گفتم، جدی می گویم، هیچ وقت توی عمرم بازی نکردم. رو کرد به یکی از اعضای حیعت ما و پرسید شما کجا بازی می کنید؟ وقتی همکار ما گفت که او هم بازی نمی کند از یکی دیگر پرسید توی مسابقه کیها بازی می کنند؟ گفتیم کدام مسابقه گفت مگر شما اعضای تیم فوتبال ماکسونر نیستید توی عمرم آدمای شوخی مثل شما ندیده بودم یکیشان گفت اینا فوتبالیست نیستن که تیم کشتی هن که از موناکو اومده یکی دیگر از خبرنگارها گفت نه بابا تو هم مگه قیافه هاشون رو نمی بینین؟ قشنگ تابلوی که اینا هنرپیش های اوپران که از هونولولو اومدن وقتی به روزنامه گفتیم ما اعضای حیعت تجاری هستیم گفتند خب اگه اینجوره چرا صبتا حالا سر کارمون گذاشتین؟ از آنها معذرت خواهی کردیم 5 مارس 1900 مهمانی دیشب خیلی خوش گذشت. پشت میز شام که نشسته بودیم یکی از آقایان بلند شد و درباره روابط دو کشور در های فرهنگ، تجارت، تاریخ، جغرافیا، شیمی و ریاضی صحبت کرد و گفت دو کشور ما سرنوشت مشترکی دارند. همه حضار تشویقش کردند. درست همان موقع چراخ ها خاموش شد. پس از چند ثانیه معطلی همگی به طرف درهای خروجی دویدند. ما مانده بودیم و نمی‌دانستیم چه خبر شده. فریاد می‌زدند: "اتصالی، اتصالی کرده." ابتدا گمان کردم کاری که با ما می‌کنند نوعی سنت، شوخی و سورپرایز این کشور است. مدتی بعد چراخ ها روشن شد. شخصی معدب گفت: خیلی میبخشید ما فکر کرده بودیم برق اتصالی کرده. چون هر از گاهی اینطور اتصالی می‌کند، اما اتصالی نبوده. پرسیدم: پس چی بوده؟ گفت: این دفعه فیوز پریده بود. دوباره پشت میز شام برگشتیم. باز چراخ ها خاموش شد. دوباره همگی بیرون دادی. توی تاریکی یقه یکیشان را گرفتم و پرسیدم اتصالی کرده یا فیوز پریده؟ گفت هیچ کدوم این دفعه برق شده چقدر طول میکشه؟ معلوم نمیکنه. بعضی وقتها خیلی طول میکشه بعضی وقتها هم توی یکی دو ساعت درستش میکنن. خدا حفظشان کنه. از بس آدمهای محتاطی هستند فوری چراغ نفتی آوردند اما چراغها نفت نداشت میخواستن خواستن شمهای روی میز را روشن ر <تص> شش مارس 1900 دیشب تا صبح نمایش هنری دیدیم، آواز خواندند ساز زدند، راستش خیلی تفریح کردیم. یازده مارس 1900 دیروز موزه ها و بناهای یادبود را نشان دادند. امروز هم برای دیدن کارخانه های جدید بردند من. فردا هم قرار است شهر را نشان بدهند. هنوز خبری از مذاکره تجاری نیست. ما هم برای اینکه ناراحت نشوند حرفی نمیزنیم. لابد برنامه ای دارند. شانزده مارس 1900 نمیدانم کار درستی است که به اینها یادآوری بکنم برای مذاکروی تجاری و عقد قرارداد به اینجا جا آمده این نه. در این مورد منتظر دستور شما هستم. دیشب به افتخارمان زیافت بزرگی ترتیب داده بودند که تا صبح طول کشید امروز قرار است مدرسه ها را نشان ما بدهند. شب هم به زیافت دیگری می رویم 19 مارس 1900 دیشب با 26 اتومبیل به محلی به نام سلوکوله رفتیم تا صبح تفریه کردیم این گزارش را در حالی می نویسم که هنوز گیج خوابه 20 مارس 1900 روزهای اول شک کرده بودم که نکند می ما را با مهمانی ها و زیافت ها و تفریح های گوناگون گیج کنند و بعد سر میز مذاکره بنشانند و سر ما کلاه بگذارند. اشتباه کرده بودم. سه هفته است به اینجا آمده ایم. اصلا حرف مذاکره را هم نمیزنند. زنند. بیست مارس هزار امروز از مدیر کل پرسیدم قرارداد را چه موقع می بندیم؟ کرد. پرسید؟ قرارداد چی؟ گفتم قرارداد تجاری؟ وقتی دیدم از تعجب خوشگشان زده برایشان توضیح دادم. توضیح هم را که شنید گفت. اه اه اه اه مگه شما هیئت تجاری هستین. ما شما رو هیئت امدادرسانی یک کشور دیگه قاطی کرده بودیم. امشب باز به افتخار من زیافت ترتیب دادند. اول اپریل 1990 دیشب در مهمانی حال سه نفر از اعضای هیئت ما خراب شد. ما هم چند تا هنرنمایی محلی را یاد گرفتیم توی مهمانی ها و زیافت ها بالا و پایی می پریم و پایکوبی میکنیم. موضوع مذاکره تجاری را بار دیگر یادآوری کردم گفتند اون که کاری نداره شما فکرشو نکن ما به شما شاهبلوط و توتون و پنبه و فندق میفروشیم شما هم به ما قهوه می‌فروشید گفتیم ما قهوه نداریم گفتند ای بی نداره خب گندم بفروشید گفتیم ما گندم و شیشماپیش از شما خریدیم گفتند خب باشه عیبی نداره اضافهش شو به ما میفروشیم. آدمای خیلی شوخیه. روز بعدش عکسمان را توی روزنامه چاپ کرده بودند. زیر عکس نوشته شده بود با کشور دوست و همسایه قرارداد تجاری منعقد شد. این بار نیز اعتباری به مبلغ 500 میلیون دلار گشاند. قرار شده است احتیاجات ضروری ضروریمان از قبیل رژل تیله، میخ میختویله و کش تیرکمان را برای برایمان بفرستند. 20 آوریل ۹ هوامه عالی جهت بازگشت دریافت شد اما از آنجا که اعضای حیعت تجاری تجاریمان در این مدت به آب و هوای این کشور عادت کرده اند امکان بازگشتمان وجود داد میخوریم؟ می میزنیم می میکووبیم تفریق میکنیم از این رو با احترام به استهزار هزار می رسند همگی با هم تصمیم گرفته ایم تابعیتمان را. در این کشور زیبا مندگاه شد